سوریار علمه به نام الله که بخشاگنده و با رحمت است خدای رحمان قرآن را تعلیم داد انسان را خلق کرد به او سخن گفتن آمود آفتاب و ماه در مدار دقیق خود در حرکتند هم ستاره و هم درخت سجدهش می کنند بدانید خدای رحمان آسمان را برافراشت و میزان را وزن کرد تا از میزان تغیان نکنید عادلانه وزن کنید و کم فروشی نکنید زمین را برای مردم آفرید که در آن میوه ها و نخل با شکوفهای فراوان هست، دانه که شکل کاهند و گیاهان خوشبوی دیگر. پس کدامین نعمت های پربردگارتان را انکار می انسان را از گل خوشگیده چون سفال آفرید و جن را از شعله های رنگارنگ آتش آفرید. پس کدامین نعمت های پربردگارتان را انکار می او پروردگار دو مشرق و دو مغرب است پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار میکنی؟ دو دریای مختلف را کنار هم قرار داد تا به هم درسند میانشان حائلی است تا در هم نیامیزند، پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار میکنی؟ از آن دو دریا مروارید و مرجان خارج می شود. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ کشتی هایی که چون کوهی در دریا روانند از آن او است. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ هر که بر روی زمین است فانی است، و فقط وجه پروردگار صاحب جلال و گرامیت باقی می مانند. پس کدامی نعمت های پروردگارتان را انکار می همه کسانی که در آسمان ها و زمینند از او تقاضا دارند و او هر روز در کاری است پس کدامی نعمت های پروردگارتان را انکار می ای دو گروه جن و انس به زودی به حساب شما خواهیم رسید پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید یا معشق الجن و الانس این ان تنفذو من لا تنفذون الا بسلطان فبی آلای ای آلائی ربكما ای جماعت جن و اگر می توانید از مرزهای آسمانها و زمین بگذرید ولی هرگز قادر نخواهید بود مگر با نیروی الهی پس کدامین نعمت های را انکار می کنی؟ بر شما شعله بادود و بی دود می فرستند. حالان که نمی توانید از کسی یاری بگیرید پس کدامین نعمت های را انکار می کنی؟ آنگاه که آسمان چکافت شود چون روغن سرخ شده و می گردند پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید در آن روز از گناه هیچ انس و جنی نمیپرسند زیرا هیچ مهلتی نخواهند داشت پس کدامین نعمتهای های پروردگارتان را انکار میکنید مجرمان از چهره هایشان شناخته میشوند، پس موهای پیش سرشان و پاهایشان را میگیرند و وارد دوزخ می کنند پس کدامین نعمت ها پروردگارتان را انکار میکنید؟ این همان جهنمی است که مجرمان تاکسی میکردند می کردند. همواره میان آن و آب جوشان در رفتته آمدند پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار هر کس از مقام پروردگارش خوف داشته باشد دو بهشت دارد پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید آن دو بهشت پر از درختان متنوع است پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید در آن دو بهشت دو چشم جاری است پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید در آن دو بهشت از هر میوهی دو قسم است پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید آنها بر بسترهایی که آسترش از پارچه ابریشمیز تکیه دادند و میوه های رسیده آن دو بهشت در دسترس است پس کدامین های پروردگارتان را انکار می‌کنی؟ در آنجا همسرانی زیبا و وفادار هست که هیچ انسوجنی پیش از این آنها دست نزده است. پس کدامین های پروردگارتان را انکار می‌کنی؟ آن زمان مثل یاقوت و مرجان. هند. پس کدامین های پروردگارتان را انکار میکنید آیا جزای نیکی به جز نیکی است پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ غیر از این دو بهشت دو بهشت دیگر نیز هست پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید هر دو کاملا سبز و خرم هستند پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید در آن دو دو چشمه جوشان است. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید در آن دو بهشت میوه است و نخل و انار. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید در آنجا همسرانی زیبا و خوشقل است. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید هوریانی که در خیمه ها مستورند. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می قبل از بهشتیان هیچ انسوجنی به آنها دست نزده است. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می بهشتیان بر پشتیهایی های که با بهترین و زیباترین پارچه های سبز رنگ پوشانده شده است. پس کدامین نعمت های پروردگارتم را انکار میکنید با برکت است نام پروردگار صاحب جلال و گرامیت لبی انای ربکما تکنب تبارک اسم ربک ذلجلال راست گرد خداوند بلند مرتبه بود از کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و